illahi daraka lam ta'nas bidunyana wa lam tasir khalf tayf as-sayf khudalana wa lam tu'affir jabina al-'izz mubtadilan tastamtiru ad-dhulla ismullahi ar-rahman ar-rahim hamda sana'u isti'ish farawan anzat rast ki kitab ba'azamat ashra dilha wa nur sinaha wa saiqal dehandai andoha wa dur kunande ghamha gardanida ast درود و صلوات بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم برادران مهاجر و مجاهد السلام علیکم و رحمت الله و برکات خداوند من نام را سپاسگزاریم که به ما فرصت داد تا یک بار دیگر از طریق رادیوی صدای جند الله به خدمت دوستان عزیز قرار بگیریم امروز جمعه تاریخ 23 مارچ حرکت اسلامی ازبکستان استودیوی الله نشرات فارسی خود را در برنامه از جمعه تا جمعه ادامه میدهد. خدا کنه که همیشه تحت رحمت الهی قرار داشته باشید. و همچنان امیدواریم که داشته های برنامه امروزی مورد پیسند شما قرار بگیرد. بله سخن به درازانه میکشونیم میراییم به طرف داشته های برنامه. در برنامه امروزی سلسله اندرزها شهید این هفته احمد فرید بدخشانی. مصاحبي صدى جند الله با برادران مجاهد تحولات یک آخر برنامه یک نشید جدید فعد يهتز في عطفيه مقتنقا يميد بين بنات هذا الذي كان فناله سلسله اندرس ها دانایی در پرسیدن است موانع را باید از سر راه برداشت گرسنگان و دردمندان شدگان اند خصوط جزبا مرک نمی آساید قابلیت های افراد متفاوت است احسان کردن از افضل عبادات است مردن بهتر از مردم آزاری کردن است دنیا مزرعی آخیرت است. از آن بهره بگیر. زاهید نباید بارین دوستی کند. آدم نیست آن کی در بند غمی دیگران نیست. خوب همکار عزیز را به خدمت شنواندگان تقدیم نمودیم. خدا کند که این اندرزهار درس خوبی برای شنواندگان عزیز قرار گرفته باشد. يا دماء الشمذال يعبر الكرماء يا دماء الشمذال صب النار على وجه المعتدين وانشر في البلاد قولة السجين صب النار على وجه المعتدين وانشر في البلاد قوله السجين يا دمانا يا دمانا يا دمانا يا يا یا دمنا یا دمنا شهید یا عزیز شما از شهید اینفته خبر دارید بله اندکی اطلاع دارم اگر اجازه باشم من به شما و به شنوندگان عزیز این واقعه را بیان می کنم بسیار خوب بفرمایید اسمه این شهید احمد فرید از ولایتی بدخشان قصه این برادر عجیب است زیرا این برادر در اوایل نزدیک به صفاف حرکت اسلامی ازبکستان پیوسته و با آموزش تعلیمات نظامی پرداخته بود بعد از ختم دروس نظامی مطابق به عمر امر عمرها نزد مجاهدین به با ولایت فاریاب رفت اگرچه در راه با مشکلات سردی دچار گردید ولكن الحمد لله بجهي که ميخواست صحت و سلامت رسيد ولكن همان روزي که رسيد شب موردي عمليات شبانه نیروهاي ناتو قرار گرفت که در نتيجه به نعمت شهادت نائل گشت ببينيد اين چقدر نگبخت و سعادتمند است امروز یهود و نصاره را در دنیا و آخرت خار و ذلیل نموده و به این برادر سعادت من ما جنت های جاویدان نصیف فرماید اینا لله و اینا الیه راجعون موسیقی <تصفح> أيمن على الشهادة وبها حقق مراده ورفع راية بلاده أنت في كل السعادة أيمن على الشهادة وبها حقق مراده ورفع راية بلاده أنت في كل السعادة انتم للجيل يا دماء الله يا دماء بقايا al تكوينا وتنك وجرحها فينا Fina تناغينا الا اين الميامين بقايا المجد تكوينا بسم الله الرحمن الرحيم. ألا ألا ألا ألا خوش مطابق و چن تن مجاهدی که جدیداً به پی حرکت اسلامی ازبکستان پیوسته اند اینها جوانانی اند که با صداقت ایمانی به میدان جهاد آمده و تعلیمات نظامی پرداختند شمار زیاد منتظر نمی گذاریم میراو این به طرف برادران البته در قدم نخست از استاد محترم میپرسیم که اینها در مورد تعلیمات نظامی که به مجاهدین تعلیم می دهند چی گفتنی ها دارند أستاذ محترم الحمد لله الذي سيد الأنصار والمهاجرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الجهاد ماذ إلى يوم القيامة أو كما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحه خير من الدنيا وما فيها الحديث شمگجگر سوز سوزانت پرده فانوس را قومی غیرت چی داند قیمت ناموس را حضار محترم و برادران عزیز الحمدلله الله تبارک و تعالی ما خیلی شکر که الله تبارک و تعالی ما را هدایت کرده در اینجا با شیرا و با خادمان و خدمتگاران دین موبل اسلام یک جا شده تعلیم نظامی را میگیریم الحمدلله از هر دقه، از هر ثانیه، از هر ساعتی که در اینجا تیر می شود ما خیلی شکرگزار هستیم ما خیلی شکرگزار هستیم که الله تبارک و تعالی ما را هدایت کرده و در این صف مقدس، در این صف راسخین با همراه این شیران ما را الله تبارک و تعالی یکجا جا کرده این از وسط قدرت ما نیست بلکه الله تبارک و تلا برای ما حدایت کرده و همچنان این یک فریزه ای است فریزه است از طرف الله تبارک و تلا جهاد امروز بالای حرف فرد فرد و شما فرض است این یک فریزه الهی است حضار محترم و تعلیم گرفتن این هم فرز است برای ما ما و شما باید که تعلیم نظامی تعلیم دینی و تعلیم نظامی باید گرفته باشیم، باید که در در مقابل اندش من آمادگی داشته باشیم. برادران عزیز، من شما امت نبی علیه السلام هستیم. نبی علیه السلام شاگردانی نبی علیه السلام تعلیم دینی رو هم می گرفتن در مدرسه هم درس می خواندن و دعوت هم می کردند و جهات هم می کردند. بیاید برادران عزیز، ما هم از Shagirdani waqii nabi alaihissalam johdavim. In gradaraira kiiin ruus mei binet, kei derin jaa as inha ham as madrasahada as. Inhaa talimaa te dinira graftaa, wa halan mei kohan kei talimeni zamira begren. Ruus varausi gradarima, zyatta madarai sen. Inshaallah dine islam der tarikh kamjabut perusbud, wa inshaallah kamjabas. Mroz ki in kufar Dar Mamalik Islamiki Hajom Namuda As. InshaAllah Kinbi Radharadar -ra, Maqabalaj estas shudah, and taqami Quran wa Migurat, InshaAllah intakami Qasul Akram Salah Salaamba Migrim, InshaAllah Imruz, intakami ummati qagdamanira, inshaAllah Imruz Migririm, kufari, on kufariki mroz, onjar attiraqikarda as. باب پیغمبر برای ما تمسخری میکند در قرآن ما بول میکند ان شاء الله که انتقام هر یک یکی از ما میگیریم آن کفار این فکر را نکند که این امت غیرت است این آمد ان الله تبارک و تعالی که رجال دارد انتقام این را ما میگیریم ما غیرت نیستیم صحابه رضی الله تعالی هو جان خود را فدا میکردند تا این که ایمانشان را اثبات بکند ما به غیرت نیستیم با این کفار انشالله اصاب و کتاب داریم اصاب و کتاب داریم عداوت در قلب ما الله که ما ایمان خود را در عمل نشان میدیم هزار محترم امروز که این برادرارا را که شما میبینید که در اینجا جمع شده است اینها آمده استن تعلیمات نظامی را میگیرن تعلیم نظامیشانم کم مانده است الله که Joo, Dandon sitten on vielä yksi asia, joka on tehty. Siellä on vielä yksi asia, joka on tehty. Siellä on vielä شيبا است که شما در اين صحب مقدس پيواستيد و در اين راه را به خود انتخاب نمديد انا ديخه بري موږ مجبور کړم چې افغانستان کي او پنورو زايونو کي او دغه باندي خانو کي نوزمر پر او او عام تعلیم ترا غل هم او زیده خبري مشکوره کړم شنن کو پار مشقران سوځي زیده دی وجو 15 سم پريشه د دی وجي راغله ما اغه تعلیم کوم دی دوجي کو پار سرو وجه ګلو برادران متترم چې نصیحت در به در به خاطر تعلیمات دو کتابه زنه نڅغو ورنوت چې هغه منتقوایا حکمت وایي یا نور یا نور درسونه وایي غورن ته دانه صحت لرما چې بدیو باندې هیڅ او ورنا چې هغه جهاد کولای نسی د وسخه د اخوه هیڅ لرمه چې هغه بای چې هغه هجرات وکي اما اول مال ورکي که مال نه لري نو هجرات وکي کنو ترڅو اس کې د مجاهیدینو سره و ای تعلیماتی نظامی را که ما به خاطری آموختن در اینجا آمده‌ایم و میخوایم که تعلیماتی نظامی را ما بیاموزم و یاد بگیریم اصلی هدف ما این است که حکم خداوند ما را مجبور به که ما قانون نظامی را و تعلیمات نظامی را یاد بگیریم و حکم خداوند جل والا را بجا بیاوریم چرا به خاطری که جهاد یکی از فرایض الله جلد علاشان و هم که بربرای انسان فرض گردانی و اگر ما در از این کوشش نکنیم و جهاد را برپانه سازیم مسلمان بودن ما هیچ وقت کامل نمی باشد نمی حکم خداوند ما را مجبور ساخت که خاطر تعلیمات نظامی و آمختنی آن در اینجا آمده کودام نصحاتی که به برادران داشته باشم میکروفون رادیو صداي گندل با خدمت شماست نصحتی ما برای و برای آن مسلمان و پیرو صحابه کرام حضرت عمر رضی الله تعالی نهو رزمید همچنانین مسلمان ها مثل از آنها در مقابل کفار بیر از من و پیامی من بری مسلمان ها این است که این قدر غیرت پیدا کنند که چنانچی امریکایی ها با زن ها اتا که زن هایشان را در کشور ما آورده و در مقابل ما می جنگن و بری ما چی شده است که در دری دروازه ما امریکایی آمده و ما در مقابل آنها استاد شده و جنگیده نمیتونیم. باید که هر مسلمان این احساس داشته باشه و به خود فکر بکنه که چرا امروز کفار در کشور ما بر بالای ما مسلط و بر بالای ما حکومت میکنند حتی که مردهایشان را ها اینها این قدر جرأت کردند که زنهایشان را در افغانستان آورده و بر بالای ما حکومت میکنند پیام ما برای برادران امین است که باید از غیرت و از شهامت مسلمانی کار گرفته و در مقابل دشمنان اسلام بیرزمند و جهاد را برپا وسازند جزاك الله اکو میرم با سرهغ برادران دیگر برادر عزیز خدرا بینندگان رادیوی صدای جن جن الله معرفت نامیده و بر در افغانستان یهود و نصاره و از فرعون و قارون و غیره آمده در افغانستان از موسفیده ما گرفته تا به طفله های ما چقدر به عزتی چقدر به عفتی چقدر, چقدر, چقدر گمرایی ها حتی که مردها و زنه ها و فیلا های مرا بقتل رسنده و تمام مسلمانان افغانستان و تمام جهان اسلام تقاضا داریم تقاضا میکنیم که کفار مشرکین که محمد مصطفی الله علیه و سلم را از باید بگیرند فی الحال شما اگر جهاد فردعای نمی شد، تمام علماء افغانستان و پاکستان و دیگر, دیگر و دیگر برای مسلمان ها نمیدادند، چون که در قرآن کریم خدای پاک میفرماید که یا ایوها نبی یو جاه دیل و المنافقین. جهان سپاس از برادران ما که با اشترکشان برنامه ما را زینت بخشیدند. ان شاء الله در هفته های بعدی مصاحبه های دیگری را داریم با ما باشید والسلام علیکم و الله و ولا عشنا حياه الذل نخشى اليوم انذلا لا كن ولا كنا اذا لم نمض ابطال ولا عشنا حياه الذل نخشى اليوم انذلا لا كن ولا كنا إذا لم نمض ابطال ولا عشنا حياه الذل نخشى اليوم انذلا ذَالَ فَقومُم وخْل ع ربابَ القهرِ واصفع كل من صلَ فَه العز مرتهن بدم الحر سال فقومم وخل ربااب القهرِ وصفَع كل منَنْ صلا فه العّمُ الرتَان بدمّ الحر المجد أين الميامين ب جدید نوبت به بخش اخیری پروگرامی امروزی ما رسید. البته در این بخش از تحولات یک هفته شما را باخواه بر میسازیم. و افغانستان 24 ربیعاستانه مطابق شانزده د مارچ در شهر کابل یک هلیکوپتر نظامی نیروی ترکی به یک منزل تصادم نموده سقوط کرد که در نتیجه هلیکوپتر مذکور با دوازده تن اثر نشان نشنن به حال کدر و منزل مذکور نیز تخریب گردید 25 ربیه ثانی مطابق 17 مارچ آمید دست نشانده آمریکا در یک تماس تلفنی به باراک و گفت گفت کساکیرش را از دیهات افغانستان خارج نموده و در شهرها در مركزشان جاگوزین نماید شش ربیه ثانی مطابق 18 مارچ چهار عسکر اردوی میلی در اثر عملیت های مختلف در ولایت های قندهار جلالباد و هلمان به قتل رسیدند 29 ربیثانی مطابق 21 مارچ در ولوسواری نری سراجی ولایت هلمند یک عسکری بریتانوی که همراهی از اسکر ملی مسروف غزمه بودند ناگهان مورد حملات ماینی کنار جاده قرار گرفتند که در نتیجه یک اسکر بریتانوی به قتل رسیده به جهنم روانه کردید. باز هم کابل 26 ربیثانی مطابق 18 مارچ در مورد قضیه پنجوایی های کوفری حقیقت را پنهان نمدند ولیکن با کوشش زیاد خود باز هم نتوان ستان پینغان و اکنون حقیقت آشکار شد در هفته گذشته ایشان گفتن که یک مرد آمریکایی فقط 16 افراد ملکه را در پنج وای با قتل رسانده است ولی اکنون در یک ویدیویی که پخش گردیده نشان داده شده است که تعداد از که در این قضیه شرکت کرده بودن از 15 الی 20 نفر بوده و 5 از پنجا نفر را به قتل رسانده اند شاهدان عینه در فنجوایی میگویند که یک روز قبل آمریکاییان آمدند و به ما گفتند که ما شما را به علت اینکه چند روز پیش افراد ما را به قتل رساندید و قتل خواهیم رساند و بعد صبح همان روز عساکر آمریکایی در این خریه به حالت بستی داخل شده این قضیه را انجام دادند دمشق 25 ربیستانی مطابق 17 مارچ در شهر دمشق سوریا در نتیجه انفجار دو موتربن به جداغانک یکیان در منزل پولیس و دیگری در منزل سبارات حکومت انفجار گردید بیش از 27 تن کشته و ست تن دیگر مجروح گردیدند یمن 26 ربیستانی مطابق 18 مارچ دو فرد امریکایی که در مکاتب حکومتی در آن کشور درس عیسویت را می از سوی مجاهدین اختطاف کرده شد و بعد مجاهدین از کساشدن این دو نفر نیز خبر دادند ایراق 28 ربیه مطابق 20 مارچ در نتیجه Fijorri انفجار Sharibardot, در شهر بغداد Shanku تن کشته و Shanku Shanku Shanku Shanku Shanku Shanku Shanku Shanku Shanku Shanku از Shanku Shanku Shanku مجاهدین گروه شباب 15 تن از نیروهای حکومت را اغتیاب نمودند فرانسه 28 ربیع الثانی مطابق 20 مارس یک فرد بنامی محمد مهرد در 12 روز در عملیات جداگانه 7 نفر را در فرانسه به قتل رساند است در میان کشته شدگان یهود، و مرتدین شامل این برادر یک را که با حکومت خدمت میکرد و خواست تا به وی یک معامله نماید هنگامی که این مرتد به معامله آمد و این برادر فرصت را غنیمت دانسته وی را به قتل رسند چهار روز بعد به تاریخ 15 مارچ وی سی اسکر را که دوی آن از جمله مرتدین بود تحت مراقبت خیش قرار داد وی موفق شد تا دو مرتد را به قتل رساند و یک عسكري مسیونی را زخمی سازد. با تاریخ 19 مارچ واردی یکی از مدارس یهودی شده، در آنجا یک استاد و دو شاگرد را به قتل رساند. در این انگام پلیس از پی این برادر گردیده و در خانهش اش محاصره نمودند، ولكن تا صبح امان روز پلیس نتوانستند که این برادر را دستگیر نمایند. هنگامی که این برادر تحت محاصره قرار داشت، به تلویزیونی ملی فرانسه تماس گرفته گفت: "بدانید که من مجاهدم و این عملیات را به خاطر اینکه شما حجاب را معنی نموده بودید انجام دادم و همچنان بودنی اساقیر فرانسوی در افغانستان سبب شد تا من این عملیات را انجام دهم و بعداً این برادر بد دست پلیس اسیر گردیدید پشاور 22 ربیع الثانی مطابق 14 مارس دو فرد سیویسی که نزد طالبان پاکستان اسیر بودند اکنون بعد از 8 ماه در بدل پول زیادی مبادله گردید ایشان در تابستان گذشته در سرحدات ایران دستگیر گردیدند در این هنگام طالبان پاکستانی از حکومت خواستند او مجاهدین را آزاد سازند و کنون نیز نزد طالبان پاکستانی یک عسکری آلمانی یک ایتالیایی و یک آمریکایی اسیر‌اند آلمان 26 اردیبهشت مطابق 18 مارچ Як برادر مجاهد اکنون در محكمه آلمان قرار دارد اسم این برادر احمد در اصل تبیتی افغانی دارد در وزیرستان به صفوی حرکت اسلامی ازبکستان بود و بعداً به تنظیم القائده پیوسته بود چند سال پیش در کابل گرفتار شده و بیشتر از یک سال را در زندان بگرام سپری نمود به اینکی این که پاسپورتش آلمانی بود نیروهای ناتو وی را تسلیم حکومت آلمان نمودند الجزایر 18 ربیع الثانی مطابق 20 مارس نزد برادران مجاهد در تنظیم القایده چند اسیر از نیره های آلمان وجود دارند و میخواهند که بایا خوهر مسلمه که اکنون در زندان آلمان بسر می مبادله نمایند علت دستگری این خوهر این بود که وای با مجاهدین کمک مالی می و حتی با مجاهدینی که در وزیرستان مبلغ 3200 یورو را فرستاده بود امجر و اطلب مسمعی زمجر برادرانی محترم این بود داشته های برنامه امروزی که به خدمت شما تقدیم نمودیم باشینی دن یک ترانه ی جدید همه شما را به خداوندی منان نان سپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و ashman hamidangam jahadam sar das sarishwas de waste mordanam khandam asire ishq banman barayashman hamidangam jahadam zamani zamani hamin akvarse aanam be insunat zamani khalidam budam, zamani khareh ziyaad hamin akvarse aanam be Azire minaazam azira alash takhannan baraayash sar شکاس به وسط مورد نم خندم، عزیزش من برایش من همی جنگم، جهادم سر سرش سر اشکاس به وسط مورد نم خندم، درون سینم آتش زنده ان شوالها در دل، نگاهم خاش مباروقی بسوزد کفر اهریمن. درون سینه هم آتش دنات آن شوله ها در دل نگاهم خشم فاروقی بسودت کفر اهریمن از زیر اشت رفن من من همی جنگم جهادم سر به سرشت هست و وقت مردنم حسیر اشک رضمند برایش من همی جنگم جهادم سر به سر اشک است وست مردنم خدمت جهادش با به عشاق دران رخسان ماستن زبون سازن دشمن را شنوشند جام میخانه جا دست با و دران برام رقص زبون سازن ل را چنوشان جا میخانهه اززی ش به برایش من, من هم می جنگم جدم سر به سرش ت به وقت مدانم خندند اصیر عشق رفتم من برایش من همی جنگم جهادم سر به سر مردنم خمدم نبینم مرحمی دیگر برای زخم امروزی مگر شمشیر ایوبی زند سرهای تاقوتی نبی نمار حمیدی جا برای زخم افروزی مگر شمشیر ایوبی زنت سرهای طاغوتی اسیر است کظم من برایش من حمیدانم جهادان سر درش خلاص در وقت Asire-e-kharab man barayash man hamidangam Jahadan sath sar shast vaaste mardanam khandam Muhajir sath khankuta bar-e dunyaye tu khali Mujahid has waliyeman Mujahid mujahid hai sach sun khu taarin duniyaaye tu khani mujahid hai swaliye man mujahid hai swaliye man mujahid